به به چه خوردنی های خوشمزه ای این غذاهای خوشتم بیشتر مخصوص مراسم مذهبی است شله زرد چقدر شیرین و خوشمزه است از چه تهیه می شود شله زرد با برنج و شکر و زعفران پخته می شود اسم این غذا را هم می دانم این حلوا است بله این خوردنی را با آرد روغن شکر و زعفران تهیه می کنند آیا در اوقات دیگری هم از این خوردنی ها استفاده می شود؟ بله، در ماه رمضان هم این غذاها سفره های افطار را زینت می دهند. آیا در همه شهرها این خوردنی ها پخته می شود؟ بله، البته تن و مزه آنها در شهرهای مختلف متفاوت است. من غذاهای شیرین را خیلی دوست دارم. علاوه بر آن این غذاها مقوی و انرژیزا هستند